مصنوی معنوی مولوی برنامه 155 حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی با وی روی نموند پادشاه داشت یک برنا پسر باطن و ظاهر مزین از هنر خواب دید او کان پسر ناگه مرد، صافی عالم برانشه گشت درد خوش شد از تاب آتش مشک او که نماند از تف آتش اشک او آنچنان پر شد ز دود و درد شاه که نمیابید در دروی راه آه خاست مردن قالبش بیکار شد عمر مانده بود شه بیدار شد شادی آمد ز بیداریش پیش که ندیده بود اندر عمر خیش که از شادی خواست هم فانی شدن بس متوق آمد این جان و بدن از دم غم می بمیرد این چراغ و از دم شادی بمیرد این لاغ، در میان این دو مرگ او زنده است این متوق شکل جای خنده است شاه با خود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب ای عجب یک چیز از یک روی مرگ وان زیگ روی دگر احیا و برگ آن یکی نسبت بدان حالت حلاک باز هم آن سوی دیگر امتساک شادیتن سوی دنیاوی کمال سوی روز عاقبت نقص و زوال خنده را در خواب هم تعبیر خان گریه گوید با دریغ و اندوهان گریه را در خواب شادی و فرح هست در تعبیر ای صاحب مره شاه اندیشید که غم خود گذاشت لیک جان از جنس این بدزن بگشت و رسد چنین چونین اندر قدم که رود گل یادگار بایدم چون فنا را شد سبب بی منتها، پس کدامین راه را بندیم ما. صد دریچه و در، سوی مرگ لدیغ می کند اندر گشادن جیغ جیغ. جیغ جیغ تلخ درهای مرگ نشنود گوش هریس از حرس برگ. از سوی تن دردها بانگ درست و سوی خسمان جفا بانگ است. جان من برخاندم فهرست طب نار علتها نظر کن ملتهب زان همه ها در این خانه ره است هر دوگام پرز کشدم ها چه هست باد دست و چراغم ابتره زوبی گیرانم چراغ دیگره تابوت که از هر دو یک وافی شبد گربباد آن یک چراغ از جا رود همچو آرف کستن ناقص چراغ شمع دل افروخت از بحر فراغ تا که روز کین بیمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان او نکرد این فهم پس داد از غرر شمع فانی را به فانی دگر عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. پس عروس خواست باید بهر او تا نماید زین تزوج نسل رو گر رود سوی فنا این باز باز فرخ او گردد ز بعد باز باز صورت این باز گرزینجا رود معنی او در ولد باقی بود. بهر این فرمود آن شاه نبه مصتفا که الولد سر و ابه بهر این معنی همه خلق از شعف می بیاموزند تفلان را حرف تا بماند آن معانی در جهان چون شود آن قالب ایشان نهان. حق به حکمت حرسشان داده است جد. بهر رشد هر صغیر مستعد. من هم از بهر دوام نسل خیش جفت خواهم پور خود را خوب کش. دختری خواهم ز نسل صالحه نیز نسل شاه کاله شاه خود این ساله است، آزاد اوست، است، نه اسیر حرس فرج است و گلو است. مر اسیران را لقب کردند شاه، عکس چون کافور نام آن سیاه، شد مفازه بادیه خونخار نام، نیک بخت آن پیس را کردند آم، بر اسیره شهوت و خشم و عمل برنوشته میر یا صدر عجل آن اسیران عجل را آم داد نام میران ایران عجل اندر بلاد صدر خوانندش که در صف نعال جان او پست است یعنی جاه و مال شاه چون با زاهد خیشی گزید، این خبر در گوش خاتونان رسید. اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهد را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرام، و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش. مادر شهزاده گفت از نقص عقل شرط کفویت بود در عقل و نقل. تو ز شه و بخل خواهی وزده ها تا ببندی پور ما را برگدا. گفت صالح را گدا گفتن خطاست کو و قلب از داد خداست در قناعت می گریزد تقا نزل ایمی و کسل همچون گدا قلت کان از قناعت و استقاست آن زفق و قلت دونان جداست حبه آن گربیابد سرنهد وین زگنج زر به می میجهد شه که او از هرس قصد هر حرام میکند او را گدا گوید همام گفت کو شهر و قلا او را جهیز؟ یا نصار گوهر و دینار ریز گفت رو هر کو غم دین برگزید باقی غمها خدا از وی برید غالب آمد شاه و دادش دختره از نژاد سالح جوهره در ملاهت خود نظیر خود نداشت، چهرهش تابانتر از خورشید چاشت. حسن دختر این خسالش آنچنان که از نکویی می نگنجد در بیان. سید دین کن تا رسد اندر تبع حسن و مال و جاه و بخت منتفع. آخرت قطار اشتر دان با ملک در طبع دنیاش همچون پشم و پشک پشم بگزینی شطور نبود تو را ور بود اشتر چه قیمت پشم را چون برآمد آمد این نکاح آن شاه را با نژاد سالحان بیمرا از قضا کمپیرک جادو که بود عاشق شهزاده با حسنجود جادوی کردش عجوزه کابلی که بردزان رشک سهر بابولی شهبچه شد عاشق کمپیر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشت یک سیاه دیوی و کابولی زنه گشت بر شهزاده ناگه رهزنه آن نوت ساله عجوز گنده نی خیرد هشت آن ملک را و ننس تا بسال بود شهزاده اسیر بوسجایش نال کفش گنده پیر. صحبت کمپیر او را می درود تازه کاهش نیم جانه مانده بود دیگران از ضعف وی با درد سر ز سکر سهر از خود بی خبر. این جهان بر شاه چون زندان شده وین پسر بر خندان شده شاه بس بی چاره شد در برد و مات، روز و شب می کرد قربان و زکات زن هر چاره که می کرد آن پدر، عشق کمپیرک پیرک همی شد بیشتر پس یقین گشتش که مطلق آن سریست، چاره او را بعد از این لابه گریست سجده می کرد او که فرمانت رواست غیر حق بر ملک حق فرمان کراست لیک این مسکین همی سوزت چود دستگیرش ای رحیم و ای ودود تازی یارب یارب و افغان شاه ساهر استاد پیش آمد زرا مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی او شنیده بود از دور این خبر که اسیر پیرزن گشتان پسر کان عجوزه بود در جادویی بینظیر و ایمن از مثل و دویی دست بر بالای دست است ای فتا در فن و در زور تا ذات خدا منتهای دستها دست خداست بر بی شک منتهای هاست. هم ازو گیرند مایه ابرها هم بدو باشد نهایت سیل را گفت شاهش که این پسر از دست رفت گفت اینک آمدم در مان زفت نیست همتا زال زال رازین ساهران جز من داهی رسیده زن کران چون کف موسا به امر کردگار نک من ز او دمار که مرا این علم آمد زان طرف نه شاگردی سحر مستخف آمدم تا برگشایم سحر او تا نماند شاهزاده زرد رو سوی گورستان برو وقت سهور پهلوی دیوار هست اسپید گور سوی قبله باز جای را تا ببینی قدرت و سنع خدا بس دراز است این حکایت تو ملول زبدر گویم رها کردم فضول سوی گورستان برفت آن زود گور را آن در دردم برگشود. شود جادوی دید پنهان اندرو صد گره بربسته بر یک تارمو، مو. آن گره های گران را برگشاد. پس زمهنت پور شهر را راه داد. آن پسر با خیش آمد. شد دوان سوی تخت شاه با صد امتحان. سجده کرد و بر زمین میزد زقن. در بغل کرده پسر تیغ و کفن شاه آین بست و اهل شهر شاد وان عروس ناامید بی مراد عالم از سر زندگشت و پرفروز ای عجب آن روز روز امروز روز یک عروسی کرد شاه او را چنان که جلاب قند بد پیش سگان جادوی کمپیر از غصه بمرد. روی خوی زشت فامالک سپرد شاهزاده در تعجب مانده بود که از من او عقل و نظر چون در ربود نو عروسی دید همچون ماه حوزن که همه زد بر ملیهان راه حوزن. گشت بر برو اندر فتاد تا سه روز از جسم وی گم شد فواد. سه شبان روز او ز خود بیهوش گشت تا که خلق از غشی او پر جوش گشت. از گلاب و از علاج آمد بخواد، اندک اندک فهم گشتش نیک و بد. بعد سال گفت شاهش در سخن کی پسر یاد آر از آن یار کوهن، یاد آور زان زجه و زان فراش تا بدین حد بیوفا و مر مباش، گفت رو من یافتم دار سرور، وارهیدم از چه دارالغرور، همچنان باشد چون مؤمن راه یافت سوی نور حق ز ظلمت روی تا. در بیان آنکه شاهزاده آدمی بچه است و خلیفه خداست پدرش آدم صفی خلیفه حق مسجود ملائک و آن کمپیر کابلی کابولی دنیاست که آدمی بچه را از پدر ببرید به سهر و انبیا و اولیا آن طبیب تدارک کننده ای برادر دان که شهزاده تویی، در جهان کهنه زاده از نوی، کابولی جادو این دنیاست که کرد مردان را اسیر رنگ و بو. چون در در این آلود روز، دم بدم میخان و میدم قلعوز، تارهی زین جادویی و زین قلق استعازت خواه از رب الفلق زن نبی دنیات را خواند کو کوب افسون خلق را در چه نشاند هین فسون گرم دارد گند پیر کرده شاهان را دم گرمش اسیر در درون سینه نفاسات اوست، اقده های سهر را اثبات اوست. ساهر دنیا قویدانا زن است، حل سهر او پای آما نیست. ورگشادی عقد او را عقل ها، انبیا را کیف فرستادی خدا؟ هین طلب کن خوشدم عقده گشا رازدان یفعل الله مایشا همچو ماهی بسته استت او به شاهزاده ماند سالی و تو شست شست سال از شست او در مهنتی نه خوشی نه بر طریق سنتی فاسقی بدبخت نه دنیا خوب نه رهیده از وبال و از زنوب نفخ او این عقده ها را سخت کرد پس طلب کن نفخ خلاق فرد تا نفخت و فیه من روح تو را بارهاند زینو، گوید برترا. جزب نفخ حق نسوزد نفخ سهر. نفخ قهر است اینو، دم نفخ مهر. رحمت او سابق است از قهر او. سابقی خواهی براو سابق بجو. تا رسی اندر نفوس زو وجت کشه مسحور اینک مخرجت با وجود زال ناید انحلال در شبیکه در بر آن پردلال نه به است آن سراج امتان این جهان و آن جهان را زررتان پس به این فراق آن بود صحت این تن سقام جان بود سخت می آید فراق این ممر پس فراق آن مقر دان سخت در. چون فراق نقش سخت آید ترا تا چه سخت آید ز نقاشش جدا ای که صبرت نیست از دنیای دون چون صبر از خدا ای دوست چون که صبرت نیست زین آب سیاه چون صبوری داری از چشمه چون که بی این شرب کم داری سکون چون ز ابراری جدا و از یشربون گر ببینی یک نفس حسن و دود، اندر آتش افگنی جان و وجود. جیفه بینی بعد از آن این شرب را، چون ببینی کر و فر قرب را. همچو شهزاده رسی در یار خیش، پس برون آریز پا تو خار خیش، جهد کن در بی خودی خود را بیاب زودتر والله و الله و به سواب. هر زمان هینمشا و باخیش جفت هر زمان چون خر در آب و گل ما يفت. از قصور چشم باشد آن اصار که نبیند شیب و بالا کوروار. بوی پیراهان یوسف کنسند زن که بویش چشم روشن می کند صورت پنهان و آن نور جبین کرده چشم انبیا را دور بین نور آن رخسار برهاند زنار هین مشوقانه به نور مستعار چشم را این نور حالی بین کند جسم و عقل و روح را گرگین کند صورتش نور است و در تحقیق نار زیا خواهی دو دست از وی بدار دم بدم در روح فتد هر جا رود دیده و جان که حالی بین بود دور بیند دور بین بی هنر. همچنان که دور دیدن خواب در خفته باشی بر لب جو خوش کلب می سوی سراب اندر طلب دور میبینی سراب و می دبی. آشق آن بینش خود میشوی میزنی در خواب با یاران تو لاف که منم بینا دل و پرده شکاف نک بدان سو آب دیدم هین شتاب تا رویم آنجا با آن باشد سراب هر قدم زین آب تازی دورتر دودوان سوی سراب با غرر عین آن عظمت هجاب این شده که تو پیوسته است و آمده. بسکسا ازم بجای می کند. از مقام کن غرض در وی بود. دید و لاف خفته می ناید بکار. جس خیال نیست دست از وای بدار. خوابناکی لیک هم بر راه خوست. الله الله بر ره الله خواسب تا بود که سالک بر تو زند از خیالات نعاست برکند خفته را گر فکر گردد همچموی او از آن دقت نیابد راه کوی فکر خفته گر دو تا و گر است هم خطا اندر خطا اندر خطاست موج بر میزند می بی احتراز خفته پویان در بیابان دراز خفته می بیند شدید آب اقرب منه من حبل الورید